فصل هفتم یک کمی نور از پرده همو میریخت توی اتاق و می دیدمش که روی تخت راست کشیده قشنگ معلوم بود بیداره اکلی؟ اکلی اکلی بیداری آره خیلی تاریک بود پام رفت رو کفش یکی وسط اتاق و نزدیک بود با مخ بخورم رو زمین اکلی زحمت کشید از رو تخت بلند شده به بازوش تکیه داد روی صورتش پماد سفید مالیده بود بر جوشاش وسط اون همهطوری که این روح شده بود داری چه غلطی میکنی؟ منظورت چیه دارم چه غلطی میکنم مخواستم بخوابم که شما بیداد رو انداختین دعوتون سر چی بود؟ کلید برخ کجاست؟ کلیدو پیدا نمیکردم رو تمام دیوار اتاق دست کشیدم ولی پیداش نکردم نور به چه کارت میاد؟ اونجا کنار دستته بالاخره پیداش کردم و لامپو زدم. اکلی جلو چشمشو گرفت که نور ازیتش نکنه. وای خدای من. چه بلایی سرت اومده. خونه رو صورت و موهامو میگفت. با استردلیتر یکم حرفم شد. بعد نشستم رو زمین. توتاقشون صندلی پیدا نمیشد. نمیدونم چطوری میتونم بدون صندلی سر کنن. ببین دوست یه دست رامی بزنیم. آشق رامی بود. هنوز داره ازت خوب میره برای چیزی بذار رو صورتت خودش بهم میاد میخوای بازی کنی یا نه از دستتو. تو اصلا حواظت به ساعت هست که چنده خیلی دیر نیست یازه, یازه و نیمه اصلا دیر نیست ببین فردا بعد باشم برم مراسم کلیسا نصف شبی واسه ما داد و بیداد رو انداختین خب آدم و بیخواب میکنین دیگه حالا دواتون سر چی بود؟ طولانی ولش کام برات خوب نیست هیچ وقت باش درد و دل نمی کنه. خب چون از استردریتال هم مشنگ تره. اون جلو این بابا پرفوسره ببین اشکالی ندنه امشب رو تخت ایلایی بخوابم تا فردا شب که بر نمی گرده نه؟ میدونستم که بر نمی گرده همیشه خدا آخر هفته میره خونه من چه میدونم کی که ای می حرفش رفت رو مخم منظور چیه نمیدونی کی برمیگرده آخره آخر هفته تو یک شب بر نمیگرده دیگه مگه نه آره ولی به خدا نمیتونم به کسی اجازه بدم بره رو تخت یکی دیگه بخوابه حرفش نابودم بودم کرد از همونجا روی زمین که نشسته بودم دست راست کردم و زدم رو که اکلی کوچولو تو شازده ای میدونستی؟ نه یعنی خب نمیتونم به کسی اجازه بدم جای یکی دیگه بخوابه تو یه شازده واقعی هستی شاگرد اول و نجیب زاده ای بچه واقعا بود سیگار که تو بساتت پیدا میشه نگونه که روده بر میشم از خنده نه تو بسات هم نیست بگو ببینم دعوتون سر چی بود؟ بهش جوابی نهدم فقط پا شدم رفتم از پنجره بیرون رو نگاه کردم بر جوری احساس می میکردم آرزو کردم که احکاش درجا میمردم. بگو ببینم دعوتون سر چی بود پسر؟ دیوونم کرد از بس که پرسید. داشت پس میافتاد ببینه چه خبره؟ سر تو بود بگو جون اکلی جون اکلی داشتم ازت دفاع می سر سرلیتر گفت آدم نخاله هستی. نمی ای هستی. نمیتونم بزارم این تو اینو بهت بکنه. هیجان زده شده بود. واقعا راست میگی اینو می گفت. بهش گفتم که دارم عذیتش میکنم بعدم رفتم روی تخت ایلای دراز کشیدم غم قربت غم تنهایی چسبیده بود به سر پای وجودم اتاق بو گند میده او جوراب جورا کسافت تو دماغمه اونارو رو نمیشوری ها؟ اگه از بوش خوشت نمیاد خودت ترتیبشو بده واقعا چه نابقهی بود چطوره چرا خاموش کنم درجه خاموشش نکردم یکم رو تخت دراز کشیدم و به جین و فکر کردم تجسسم جین و استردلیتر تو اینجا رو اید دیوونم میکرد هر بار بهش فکر میکردم دلم میخواست خودم از پنجره پرد کنم بیرون <تصفح> میپرسید چرا؟ چون استردلیتر رو نمیشنسی من میشنسمش بیشتر برابچه های پنسی فقط زر رده شما و دخترها رو میزنم اونا این نکلی ولی اثرت لیتر نه واقعا رده دیشتن داره خودم از نزدیک شاهد دو موردش بودم باور کن اکلی کوچولو از زندگی مزخرفت واسم بگو ورا چراغ خاموش کن فردا صبح برم کلیسا با شدم رفتم چراغ خاموش کردم آقا شاد بشه بعد دوباره روی تخت ایلایی دراز کشیدم خیال داری رو تخت ایلایی بخوابی میبینی به این میگن آدم مهمون نواز شاید شادم نه خودتون ناراحت نکن خودم رو ناراحت نمیکنم فقط دوست ندارم یهو ایلایی بیاد و ببینه یکی رو تختش خوابیده نگران نباش این نگران اینجا نمیخوابم از مهمون نوازیتم سو استفاده نمیکنم به دو دقیقه نکشیده بود که خور و پفش بله شد منم همونجا توی تاریکی دراز کشیدم و زور زدم به جین و لیترو و ماشین رو یارو اهدبانکی فکر نکنم ولی نمیتونستم مشکل اینجا بود که تکنیکای رددیشتان آقارم بلد بودم همین همه چیزو بدتر میکرد یه بار چهار نفره توی ماشین همون یارو بانکی رفتیم بیرون خودش و دوستش عقب نشستن و منو دوستم جلو استاد مخزدم بود با مهارت تمام صدای زیر و شروع به حرف زدن با طرف میکرد انگار به بجز خوشتی بودن بلد بود قلام خوبی هم برای طرف باشه از لحنش حالم به هم میخورد طرفش بند خودی یریز میگفت نه نکن نکن نکن ولی مردک با اون صدای غلامی ساختگیش کاری میکرد که یه, یه سکوت عجیب برقرار میشد خجالت ها ور بود اونم نتونست اون شب غلام دختره باشه ولی خیلی نزدیک بود دراز کشیده بودم و همینطوری فکر می که شنیدم موقع از دستشوی برگشت و رفت اتاق صدای بند و بساط کوفتی اصلاحش رو که مرتبشون میکرد پنجره رو باز کرد کشت مورد هوای تازه است یه کمی بچه رو, رو خاموش کرد بییمرفت نکرد چشم بگردونه ببینه کجا هم. دو خیابون بودن بیشتر آدم رو داغون می الان حتی صدای ماشین هم نمیاد و جوری ای می میکردم دلم میخواست برم اکلیو بیدار کنم با صدای آروم طوری که لیتر صدامو نشنوه اکلیو صدا کردم ولی اکلی انگار نه انگار نمیشنید بازم صداش کردم آقا تخت خوابیده بود یه بار دیگه صداش کردم این بار شنید چته؟ چی شده؟ مثلا کپیدمو ببین چطوری میشه عضو کلیسا شد نمیخواستم عضو بشم اصلا فقط مسخره بازی بود باید کاتولیک باشی دیگه پس چی که باید کاتولیک باشی عوضی بیدارم کردی این سوال مسخره رو ازم بپرسی برو بگی بخواب منکه خیال عضویت ندارم شانس نداریم که اسفیم گیره یه مش راهبه شون همهشون مش احمق عوظیان یا اینکه فقط عوضیان تا اینو گفتم عین فنهر از جاش بلند شد گوش کن پسر هرچی میخوای بگی به خودم بگو ولی به اعتقاداتم توهین نکن که بد میبینی جوش نزن کسی کاری به کار اعتقاداتت نداره بابا از روتخت ایلای پا شدم و رفتم طرف در دیگه تحمل فضایی مسخرهی اتاقشو نداشتم سر راه وایستادم و دست علکی جانانهای و اکلی دادم دستشو عقب کشید که این دیگه چه کاریه هیچی فقط میخواستم به خاطر شازده بودن تزده تشکر کنم همین یه لحن قلامی گرفته بودم اکلی کچولو یه دونهی میدونستی؟ بچه پرو یکی باید همچین بزنه تو دک و پوزت زحمت ندادم زرزرشو کش کنم در و, بستم و زدم تو راه رو همه یا خواب بودن یا رفته بودن خونه و قربت اونجا از همیشه بیشتر و بیشتر شده بود جعبه خمیردندون افتاده بود جلوی در اتاق لیهی و هافمن سر را با پام مدام شوتش میکردم این برون بر خودم گفتم میرم پایین ببینم مال برو سارد چه میکنن وسط را بیخیال شدم یه تصمیم گرفتم عوض این حرفا بزنم دنگ پنسی و برم پی کارم امشبم میشدم برم چرا بعد تا چارشمه صبر میکردم نمیخواستم اینجا باشم قربت و قهمش داشت خفم می کرد. تصمیم گرفتم برم نیویورک برای خودم اتاق بگیرم برم یکی از این هتلای گرون قیمت رو تا چهارشنبه بمونم بعد چهارشنبه که حسابی خستگی در کردم برگردم خونه گفتم حتما نامه آقای ترمر تو سهشنبه چهارشنبه به مامان بابام نمیرسه از طرفی هم دوست نداشتم بی هوا برم خونه خب دوست نداشتم لا اقل تا موقعی که در موردش بحث نکردم برم خونه دلم نمیخواست وقتی نامه به دستشون رسید کنار دستشون باشم مامانم حسابی به هم میریخت البته بعد خوب میشد ولی اولش کلی به هم میریخت در ضمن هم تعطیلات نیاز داشتم عصبان بد جوری درب شده بود حالا اینطوری شد که گفتم میزنم بیرون برگشتم اتاق و چراغ روشن کردم و وسایلمو جم و جور کردم چندتایی وسیله داشتم اثرت هم از خواب بیدار نشد. یه سیگار روشن کردم و لباس پوشیدم. کل بسات هم شد دو تا ساک سفری. دو دقیقه هم طول نکشید. خیلی تند و تیز کار میکنم اینجور جور جمع و جور کردن و همیشه حالگیری بود. پرت شدن یه جفت کفش اسکیت نو که مامانم درست پیشم برام فرستاده بود اصابم و حسابی ریختم. اجساسو که مامانم میره مغازه و مغازه‌دارو هزار جور سوال پیش میکنه تا اینو بگیره ولی به کارم نمیاد آزاردهنده است. برام کفش اشتوایی گرفته بود. کفش مسابقه میخواستم ولی کفش حاکی خریده بود. همین ناراحتم میکرد. همیشه خدا وقتی کسی برام چیزی میخره آخرش ناراحت میشم. بعد از اینکه وسایلمو جمع کردم شمردم ببینم چقدر پول دارم. حلان یادم نیست چقدر داشتم ولی کم بود مامان بزرگم هفته قبل برام پول فرستاده بود ماما بزرگم ازش خوبه اونقدری سرحال نیست خیلی پیره ولی همیشه سالی چهار بار برای تولدم پول میفرسته حالا پول داشتم ولی دلم میخواست یکمی بیشتر داشته باشم کار از کاری اب نمیکنه چیکار کردم رفتم همون یارویی که ماشین تحریرمو بهش قرض داده بودم بیدارش کردم فردریک رو میگم گفتم چقد بابتش میده از اون بچه مایه داراس گفت قیمت نداره گفت خریدار نیست ولی آخر سر خریدش برای خودم 90 دلار تموم شده بود ولی ازم 20 تا بیشتر بر نداشت همچین سر حال نبود شاکی بود که چرا بی موقع کردم من و رو جمع کردم رفتم کنار رو راپله وایستدم و برای آخرین بار به راه رو نگاه کردم همچین دلم میخواست اشک بریزم نمیدونم چرا گل شگاری قرمزم و کشیدم رو سرم و اینه همیشه نقابش رو بردم عقب سرم بعد صدم و اندختم تو گلومو و پرتش کردم بیرون که خوب بخوابید عوضی ها میبندم کل طبقمون بیدار شدن بعدش زدم بیرون راپله یکی از همین آدم عوضی پوست بادوم ریخته بود نزدیک بود با مخ بخورم زمین گردنم بشکنه